سلام عرض میکنم، خدمت شما و دعوان عزیز، من شریفی هستم. به این قسمت از پادکست اوغمه من خوش آمدید. در این قسمت درخصوص انقضاي مدت اجاره و تكلیف پرداخت اجاره به آن صحبت میکنیم. سوال میشود که محلی رو برای سکونت اجاره کرده ایم به مدت یک سال، مطلبی در این قرارداد نوشته است که متوجه نمیشیم. معنی مطلب این است که اگر بعد از انقضاي مدت تصرفات خود ادامه دادید شما مکلف هستید که هر ماه اجرت المثل ایام تصرف را معادل اجرت المسمه پرداخت کنید این به چه معنی است؟ خب اپتداو توضیح بدهیم که وقتی شما قرارداد اجاره تنظیم می‌کنید، به مدت یک سال برای سکونت، در آنجا یک ماده ایسیک بندی است در مورد اجاره بهای ماهانه که مثلاً نوشته می‌شود، اجاره ماهانه پنجاه میلیون تومان است. چون این عدد در قرارداد می‌آید و مشخص می‌شود، به این می‌گویند اجرا تول مسمّا یعنی مبلغی که از آن نام بوده شده است. خوب، اگر مدت اجاره تمام بشه و شما همچنان در آن مهلبمانید، یعنی فعلاً تكلیف مشخص نشده است با صاحبانه که یا تمدید میکنند اجاره را یا خیر میخواهد که تمدید نکند و فعلاً در این مذاکرات هستیم یا تكلیف فعلاً نامعلوم است بنابر هر دلیلی. در اینجا این نباره این میخواد بگوید که اگر شما ادامه دادید به تسریفات بدون که تاین تكلیف شده در مورد تمدید یعنی همچنان نشسته اید. حالا بنابر هر دلیلی که در مورد تمدید تاوفقی نشده است، شما مکل فسید. باعث هر ماهی که بیشتر از ان مدتی که اجاره کردید منده اید، بازم همان 500 میلیون تومان را بدهید. چون این 500 میلیون تومان دیگر به این شکل که در خصوص اجاره ماهانه می‌دهد، ذکر نشده است. به این می‌گویند اجاره‌طلب میسل. پس اینجا اجاره‌طلب میسلی که می‌دهید ما نده، اجاره‌طلب مصنایی است که پرداخت می‌کند. کردی. یعنی همان پنجاه میلیون تو ما، پس منظور از اینباره دریم این مثال این است. ممکن است نوشته شده باشد که اگر شما بعد از انقضای مدت خانه را تخلیه نکنید و تهیه لداهید، با بته ادامه تصرفاتتان باید اجرت میسل بدهید. خوب اینجا دیگر مثل مثال قبل نیست چون نگف مدل اوج رتال مسما قف اوج رتال میس بدهید اینجا اگر تفاوتی نشود موزوب کارشناسیارجام میشود که مثلاً کارشناس میگوید اجاره این خانه با این شرایط در این مهل مثلاً ماهانه 70 میلیون تومان است و اینجا منظره از اوج رتال میس این عدد است که فرض میکنیم کارشناسی نداده رو میگوید موردتر از قرار نمیگیرد و همین قطعی میشود مفصلاندنی به تلاش کلی می‌دهیم، صحبت کلی می‌کنیم. خب، پس این ابراز بدی نفشه. برخلاف مثال، ممکن نمی‌است که در قرارداد جری بیان شود که شما اگر موعد رسید و تخلیه نکردید، به ازای هر روز تأخیری که می‌کنید در تخلیه آریال بدهید که این بسیار جداگانه است. پس الان. به صورت کلی دانستیم که اگر مدت اجاره منغازی شود به آنجارا تخلیه نکنیم به دین نف ممکن است با ما برخورد شود یعنی سه مثال ذکر کردیم که ممکن است یکی از این اشکال اتفاق بیافتد